اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قاسیم میم به نام خداوند بخشنده بخشایشگر تا تلك آیات الكتاب المبين. اینها آیات کتاب مبین است نتلو عليك من نبع موسى و فرعون بالحق لقوم يؤمنون. ما از داستان موسى و فرعون به حق بر تو برای گروهی که طالب حق اند ما إن فرعون على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين فرعون در زمین برتری جویی کرد و اهل آن را به گروه های مختلفی تقسیم نمود. گروهی را به زعف و ناتوانی میکشاند. پسرانشان را سر میبرید و زنانشان را برای کنیزی و خدمت زنده نگه میداشتد. او به یقین از مفسدان بود. و أن انمون على الذین استضعفو فی الارض و نجعلهم اینبتا و, و الوارثین ما میخواستیم بر مستضعفان زمین منت نهیم و آنان را پیشوایان و وارثان روی زمین قرار دهیم و نمکن لهم فی الأرض و نری فرعون و هامان و جنودهما من هم ما كانوا یحذرون و حکومتشان را در زمین پا بر جا سازیم و به فرعون و هامان و لشکریانشان آنچرا از آنها بنی اسرائیل بین داشتند نشان دهیم وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا, تخافي ولا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ ۚ إِنَّهُ كَانَ رادوه ایلیک و من ما به مادر موسا الهام کردیم که او را شیرده و هنگامی که بر او ترسیدی ویرا در دریا بیفکن و نترس و غمگین مباش که ما او را به تو باز میگردانیم و او را از رسولان قرار میدهیم فالتقطه آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا این فرعون و هامان و و ما کانو خاطئین هنگامی که مادر به فرمان خدا او را به دریا افکند خاندان فرعون او را از آب گرفتند تا سرانجام دشمن آنان و مایه اندوهشان گردند مسلما فرعون و همان و لشکریانشان ختاقار بودند. وقالت قالت فرعون قرة عين اللي ولك لا تقتلوه عساي فعنا او نتخذه ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. همسر فرعون چون دید آنها قصد کشتن کودک را دارند، گفت: نور چشم من و توست، او را نکشید شاید برای ما مفید باشد یا او را به عنوان پسر خود برگزینیم. و آنها نمی فهمیدند که دشمن اصلی خود را در آغوش خیش می پربرانند. و اصبح موسی ان كادت لا تبدي به لولا لولا اروضنا على قلبها لتكون من المؤمنين سرانجام قلب مادر موسی از همه چیز جز یاد فرزندش تهی گشت و اگر دل او را به وسیله ایمان و امید محکم نکرده بودیم نزدیک بود مطلب را افشا کند و قالت لي فبصرت به عن جنبي وهم لا يشعرون و مادر موسا به خواهر او گفت وضع حال او را پیگیری کن او نیز از دور ماجرا را مشاهده کرد در حالی که آنان بیخبر بودند وحرمنا عليه المرضع من قبل فقالت فقالت هل ادل لكم على اهل بيتي يكفلونه لكم يكفلونه لكم وهم له ناصحون ما حميه زنان شیرده را از پیش بر او حرام کردین تا تنها به آغوش مادر باز گردد و خواهرش که بی مأموران را برای پیدا کردن دای مشاهده کرد، گفت آیا شما را به خانواده ای راه کنم که می توانند این نوزاد را برای شما کفالت کنند و خیرخواه او باشند؟ فرددناه الى امه که تقر عینها که تقر عینها ولا تحزن ولی تعلم ولی تعلم ان وعد الله حق ولیکن اکثرهم لا یعلمون ما او را به مادرش بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و غمگین نباشد و بداند که وعده الهی حق است ولی بیشتر آنان نمیدانند ولمما بلغ اشده واستواه اتينا حكما وعلما وكذلك نجز المحسنين و هنگامی که موسی نیرومند و کامل شد حکمت و دانش به او دادیم و این گونه نیکوکاران را جزا میدهیم و دخل المدينه على حین غفله من اهلها فوجد فیها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 اینهو عدو مضل مبین او به هنگامی که اهل شهر در قفلت بودند وارد شهر شد ناگهان دو مرد را دید که به جنگ و نزاع مشغولند یکی از پیروان او بود و از بنی اسرائیل و دیگری از دشمنانش آن که از پیروان او بود در برابر دشمنش از وی تقاضای کمک نمود. موسا مشت محکمی بخسینه او زد و کار او را ساخت. موسی گفت: این نزاع شما از عمل شیطان بود که او دشمن و گمراه کننده آشکاری است. قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له این له هو الغفور الرحیم. سپس عرض کرد: پروردگارا من بخیشتن ستم کردم، مرا ببخش خداوند او را بخشید که او آمور زنده مهربان است. قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظهیرا للمجرمین کرده، پروردگارا به شکرانه نعمتی که به من دادی هرگز پشتیبان مجرمان نخواهم بود. فاصبح في المدينه خائفا يترقب يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخ قال له موسى انك لغوي مبين موسى در شهر ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادثه ناگهان دید همان کسی که دیروز از او یاری طلبیده بود فریاد میزند و از او کمک میخواهد. موسا به او گفت: تو آشکارا انسان گمراهی هستی.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 و هنگامی که خواست با کسی که دشمن هر دوی آنها بود درگیر شود و با قدرت مانع او گردد فریادش بلند شد. گفت ای موسی میخواهی مرا بکشی گونه که دیروز انسانی را کشتی تو فقط میخواهی جباری در روی زمین باشی و نمیخواهی از مسلحان باشی. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين در اين هنگام مردی با سرأت از دورترین نقطه شهر آمد و گفت ای موسی این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشستهاند. فورا از شهر خارج شو که من از خیر خواهان تو ام فخرج منها خائفین يترقب قال نجني من القوم الظالمین موسی از شهر خارج شد در حالی که ترسان بود و هر لحظه در انتظار حادث ای ارز کرد پروردگارا مرا از این قوم ظالم رهایی بخش ولما توجهت القاق مدین قال قال عسا ربی این یهدینی سواء السبیل و هنگامی که متوجه جانب مدین شد گفت امیدوارم پروردگارم مرا براه راست هدایت کند ولما ورد ما امدينا وجد عليه امتا من الناس يسقون وجد عليه امتا من الناس يسقون ووجد من دونهم امراتين تذودان. قال ما خطبكما و هنگامی الرعاء وابونا که به چاه آب مدین رسید گروهی از مردم را در آنجا دید که چهار پایان خود را سیراب می‌کنند و در کنار آنان دو زن را دید که مراقب گوسفندان خیشند و به چاه نزدیک نمی‌شوند موسی به آن دو گفت کار شما چیست چرا گوسفندان خود را آب نمیدهید گفتند ما آنها را آب نمیدهیم تا چوپان ها همگی خارج شوند و پدر ما پیرمرد کوهن سالی است و قادر بر این کارها نیست فسقا لهما ثم تولا الى الظل فقال فقال ربی اینی لما انزلت من موسا برای گوسفندان آن دو آب کشید سپس روبه سای آورد و عرض کرد پروردگارا هر خیر و نیکی بر من فرستی به آن نیازمندم فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ناجهان یکی از آن دو زن به سراغ او آمد، در حالی که با نهایت حیا گام برمی داشت. گفت، پدرم از تو دعوت می کند تا مزد آب دادن به گوسفندان را که برای ما انجام دادی به تو بپردازد. هنگامی که موسا نزد او شعیب آمد و سرگذشت خود را شرح داد، گفت، نترس. از قوم ظالم نجات یافتی. احداهما یا این خیر من القوی الامین. یکی از آن دو دختر گفت پدرم او را استخدام کن زیرا بهترین کسی را که می توانی استخدام کنی آن کس است که قوی و امین باشد قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك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 کار سنگینی بر دوش تو بگذارم و انشا الله مرا از صالحان خواهی یافت قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان وان علي والله علام ما نقول وكيل موسی گفت مانعی ندارد این قرار دادید میان من و تو باشد البته هر کدام از این دو مدت را انجام دهم ستمی بر من نخواهد بود و خدا بر آن ما میگویم گواه است فلما قضا موسى الاجل وسار بی اهله آنس من جانب الطور نارا آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثو إني, إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة, أو جذوة من النار لعلكم تصطلون هنگامی که موسا مدت خود را به پایان رسانید و همراه خانواده از مدین به سوی مصر حرکت کرد از جانب تور آتشی دید. به خانواده گفت درنگ کنید که من آتشی دیدم میروم شاید خبری از آن برای شما بیاورم یا شعله از آتش تا با آن گرم شوید. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة, في البقعة المباركة من الشجرة أي يا مُوسَى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين هنگامی که به سراغ آتش آمد از کرانه راست دره در آن سرزمین پربرکت از میان یک درخت ندا داده شد که ای موسا منم خداوند پروردگار جهانیان و القعصاک فلما رآها ته تز انها جان ولا والا مدبی ولم میقیبه یا موسى اقبل ولا خاف انك من الینین سایت را بیااف هنگامی که اصار را افکند و دید همچون ماری با سرعت حرکت میکند تسیید و به عقب برگشت و حتی پشت سر خود را نگاه نکرده ندا آمد، ای موسا، برگردون نترس تو در امان هستی قسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء وضم وضم ایلیک جناحک من الرهب فذانک برهانان من ربک الی فرعون و دستت را در گریبان خود فرو بر هنگامی که خارج می شود سفید و درخشنده است بدون عیب و نقص و دستهایت را بر سینه ات بگذار تا ترس و وحشت از تو دور شود این دو برهان روشن از پروردگارت به سوی فرعون و اطرافیان اوست که آنان قوم فاسقی هستند قال ربي اني قتلتم منهم نفسا فاخاف ان يقتلون عرض کرد پروردگارا من یک تن از آنان را کشتم میترسم مرا به قتل برسانند واخيه هارون هو افصح منی لسانا فارسله معي اردا فارسله معي اردا ان يصدقني اني اخاف ان يكذبون و برادرم هارون زبانش از من فسیح تر است او را همراه راه من بفرست تا یاور من باشد و مرا تصدیق کند میترسم مرا تکذیب کنند قال سنشد دوود که ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون ق بیايات نه ومن و من بهکومغالیبون فرمودبه زودی باووان تو را به وسیله برادرت محکم میکنیم. و برای شما سلطه و برتری قرار می دهیم و به برکت آیات ما بر شما دست نمی یابند شما و پیروانتان پیروزید فلما جاءهم موسى بی بینات قالوا ما هذا الا سحر مفتر و ما سمعنا و ما سمعنا بهذا في آبائن که موسی معجزات روشن ما را برای آنان آورد گفتند این چیزی جز سحر نیست که به دروغ به خدا بسته شده ما هرگز چنین چیزی را در نیاکان خود نشنیده وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار انه لا يفلح الظالمون موسی گفت پروردگارم از حال کسانی که هدایت را از نزد او آورده اند و کسانی که عاقبت نیک سرای دنیا و آخرت از آن آنهاست آگاهتر است مسلما ظالمان رستگار نخواهند شد و قال فرعون یا ایها الملأ ما علمت لكم من اله غیری فأنقد لیاها ما على الطین فاجعل فجعلی صرحا لعلی اطلع الى اله موسى و اینی لأظنه من الكاذبین فرعون گفت ای جمعیت اشراف من خدای جز خودم برای شما سراغ ندارم اما برای تحقیق بیشتر ای هامان برایم آتشی بر گل بیفروز و آجرهای محکم بساز و برای من برج بلندی ترتیب ده تا از خدای موسا خبر گیرم هرچند من گمان میکنم او از دروغ است و استکبره و فی الارض بغیر الحق و ظنو, و ظنو انهم الینا لا يرجعون سرانجام فرعون و لشکریانش به ناحق در زمین استکبار کردند و پنداشتند به سوی ما بازگردانده نمیشوند. فأخذنا وجنوده فنبذناهم فی الیم فاظر کیف کان عاقبت الزالمین. مانیز، او و لشکریانش را گرفتیم و به دریا افکندیم. اکنون بنگر پایان کار ظالمان چگونه بود؟ و جعلناهم ائمتا یدعون الى النار و یوم لا ينصرون و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به آتش دوزخ زخ میکنند و روز رستاخیز یاری نخواهند شد و اتبعناهم في هذه الدنیا لعنه و یوم القیامت هم من المقبوحین و در این دنیا نیز لعنتی به دنبال آنان قرار دادیم و روز قیامت از زشت رویانند و لقد آتینا موسا الكتاب من بعد ما اهلکنا القرون الاولا بصائر بصائر لناس و هدوم و رحمت لعلهم لعلهم یتذکر. و ما به موسا کتاب آسمانی دادیم بعد از آن اقوام قرون نخوشین را حلّاک نمودیم کتابی که برای مردم بسیار آفرین بود و مايي هدایت و رحمت شاید متذکر شوند و ما کنت بجانب الغربی ایل قضینا اینا موسى الامر و ما کنت من الشاهدین تو در جانب غربی نبودی هنگامی که ما فرمان نبوت را به موسی دادیم و تو از شاهدان نبودی ولیکن نا انشهنا قرون فتطاول علیهم العمر و ما کن تثاویا فی اهل مدین تتنو علیهم آیاتنا ولیکن ولیکن کننا مرسلین ولی ما اقوامی را در اعثار مختلف خلق کردیم و زمانهای طولانی آنها گذشت که آثار انبیا از دلهایشان محف شد پس تو را با کتاب آسمانیت فرستادیم تو هرگز در میان مردم مدین اقامت نداشتی تا از وضع آنان آگاه باشی و آیات ما را برای آنها مشرکان مکه بخوانی ولی ما بودیم که تو را فرستادیم و این آیات را در اختیارت قرار دادیم وما کنت بجانب الطور اذ نادینا ولیکن رحمتا من ربک لتنذر, لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبل کلعلهم یتذکرون تو در کنار تور نبودی زمانی که ما ندا دادیم ولی این رحمتی از سوی پروردگارت بود که این اخبار را در اختیار تو نهاد تا به وسیله آن قومی را انزار کنی که پیش از تو هیچ انزار کننده ای برای آنان نیامده است. شاید متذکر شوند. ولولا ان تصیبهم بما قدمت ایدیهم فيقولوا, فيقولوا ربنا لولا ارسلت ایلینا رسولا فنتبع آیاتک فنتبع و من المؤمنين هرگاه پیش از فرستادن پیامبری مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنان می رسید می گفتند پروردگارا چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیات تو پیروی کنیم و از مؤمنان باشیم فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالو, قالو لولا مثل ما اولم هنگامی بما موسى من قبل قالوا سحران وقالوا وقالو بكل كافرون حق از نزد ما برای آنها آمد گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسا داده شد به این داده نشده است مگر بحان جویانی همانند آنان معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند و گفتند این دو نفر موسا و هارون دو ساهرند که دست به دست هم دادند تا ما را گمراه کنند و ما به هر دو کافریم قل فأتوب بكتاب من عند الله هو أهدا منهما هو اهدا منهما اتبعه این کنتم بگو اگر راست میگویید که تورات و قرآن از سوی خدا نیست کتابی هدایت بخشتر از این دو از نزد خدا بیاورید تا من از آن پیروی کنم فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين اگر إن پیش نهاد تر ناپذیرند بدان که آنان تنها از هوسهای خود پیروی میکنند و آیا گمراه تر از آن کس که پیروی هوای نفس خیش کرده و هیچ هدایت الهی را نپذیرفته کسی پیدا می مسلما خداوند قوم ستمگر را هدایت نمی کند. وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لعلهم يتذكرون. ما آیات قرآن را یکی پس از دیگری برای آنان آوردیم شاید متذکر شوند الَّذِينَ آتَيْنَا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ کسانی که قبلا کتاب آسمانی به آنان دادئیم به آن قران ایمان میآورند آورند و ایلا یتلا علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا انه الحق من ربنا اننا من مسلمين وقتی گامی که بر آنان خوانده شود میگویند به آن ایمان آوردیم اینها همه حق است و سوی پروردگار ماست ما پیش از این هم مسلمان بودیم أولئك که اجرهم مروتین بما صبروا و یدرعون و ومما بالحسنت السیئت و مما مم رزقناهم ینفقون آنها کسانی هستند که به خاطر شکیباییشان اجر و پاداششان را دوبار بار دریافت می‌دارند و به وسیله نیکی ها بدی ها را دفع می‌کنند و از آنچه به آنان روزی داده این انفاق می‌نمایند و اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه و قالوا وقالوا لنا اعمالنا و اعمالكم سلام سلامون علیکم سلامون لا نبتغی و هرگاه سخن لغو و بیهوده بشنبند از آن روی میگردانند و میگویند اعمال ما از آن ماست و اعمال شما از آن خودتان سلام شما ما خواهان جاهلان نیستیم اینکه لا تهدی من احببت ولیکن الله یهدی ولیکن الله یهدی من یشاء و هو اعلم بالمهتدین تو نمی توانی کسی را که دوست داری هدایت کنی ولی خداوند هر کس را بخواهد هدایت میکند و او به هدایت یافتگان آگاه است وقالو ان لاتتبی الهدى معک نتخطف من ارضنا اولا لم لهم حرما امینا یجبا الیه ثمرات كل شيء. یجبا ایلیه ثمرات کل شیئر رزقا من لدن نا رزقا من ولكن أكثرهم لا یعلمون آنها گفتند ما اگر هدایت را همراه تو پذیرا شویم ما را از سرزمینمان ما آیا ما حرم امنی در اختیار آنها قرار ندادیم که ثمرات هر چیزی به سوی آن آورده می رزقی است از جانب ما ولی بیشتر آنان نمیدانند. و کم اهلکنا من قریت بطرت معیشتها فتلک مساکنهم لم تسکن من بعدهم الا قليلا و کنا نحن الوارثين. و چه بسیار از شهرها و آبادیها ایرا که بر اثر فراوانی نعمت مست و مقرور شده بودند هلاک کردیم این خانه های آنهاست که ویران شده و بعد از آنان جز اندکی کسی در آنها سکونت نکرد و ما وارث آنان بودیم و ما کان که حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرا إلا وأهلها ظالمون و پروردگار تو هرگز شهرها و آبادیها را هلاك نمیكرد تا اینکه در قانون آنها پیام بری مبعوث کند که آیات ما را بر آنان بخواهد و ما هرگز آبادیها و شهرها را حلاک نکردیم مگر آنکه اهلش ظالم بودند و ما اوتیت من شیئ فمتاع الحیات الدنیا وزینتها وم عند الله خیر وابقا افلا آنچه به شما داده شده متاع زندگی دنیا و زینت آن است و آنچه نزد خداست بهتر و پایدارتر است آیا اندیشه نمی کنید؟ افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقیه کمن بتعناه کمن بتعناه متاع الحیات الدنیا ثم و یوم القیامت من المحضرين آیا تسیچه به او وعده نیکودار ایم و به آن خواهد رسید؟ همانند کسی است که مطاع زندگی دنیا به او این سپس روز قیامت از احزار شدگان خواهد بود و یوم تزعمون روزی را به خاطر بیاورید که خداوند آنان را ندا میدهد و میگوید. کجا هستند هم تا یانی که برای من میپنداشید قال الذين حق عليهم القول ربنا ربنا اولئك الذين اغوينا اغويناهم كما غوينا تبر وانا الی ما گروهی از معبودان که فرمان عذاب درباره آنها مسلم شده است میگویند پروردگارا ما اینها را گمراه کردیم آری ما آنها را گمراه کردیم همان گونه که خودمان گمراه شدیم ما از آنان به سوی تو بیزاری می جوییم. آنان در حقیقت ما را نمی پرستیدند بلکه هوای نفس خود را پرستش می کردند و قیل دعو شرکاکم فدعوهم فلم یستجیبو لهم فلم یستجیبو لهم و العذاب فلم يستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا یهتدون و به آنها آبدان گفته می شود معبودهایتان را که همتای خدا میپنداشتید بخوانید تا شما را یاری کنند معبودهایشان را میخوانند ولی جوابی به آنان نمیدهند و در این هندام عذاب الهی را با چشم خود می و آرزو می کنند ای کاش هدایت یافته بودند و یوم ماذا و یوم ینادیهم فیقول ماذا اجبتم المرسلین به خاطر آورید روزی را که خداوند آنان را ندا میدهد و میگوید چه پاسخی به پیام بران من گفید فعميت عليهم الانباء يومئذ فهم لا يتساءلون در آن روز همه اخبار بر آنان پوشیده میماند حتی نمیتوانند از یکدیگر سوالی کنند فاما من تاب و امن و عمل صالحا فعسى ان يكون من المفلحين اما کسی که توبه کند و ایمان آورد و عمل صالحی انجام دهد امید است از رستگاران باشد و ربک خلق ما یشاء ویبتل ما کان لهم الخیاره سبحان الله و تعالی عنبای شرکون پروردار تو هرچه بخواهد می و هرچه بخواهد برمیگزیند. آنان در برابر او اختیاری ندارند منزله است خداوند و برتر است از همتایانی که برای او قائل می شوند. و رب یعلم ما تکن صدورهم و ما یعلنون و پروردگار تو می داند آنچرا که سینه هایشان پنهان میدارد و آنچرا آشکار می سازند و هو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأول وال... له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخره وله الحكم واليه ترجعون فاو فا خداییست که معبودی جزو نیست ستایش برای اوست در این جهان و در جهان دیگر حاکمیت نیز از آن اوست و همه شما به سوی او بازگردانده می شوید قل ارائیتم إن جعل الله علیکم اللیل سرمدن الیوم القیامت من اله غیر الله من اله غیر الله یأتیکم افلا بگو به من خبر دهید اگر خداوند شب را تا قیامت بر شما جاودان سازد آیا معبودی جز خدا میتواند روشنایی برای شما بیاورد آیا نمیشنوید قل ارائتم إن جعل الله عليكم لها رسمدا إلى يوم القيامة من إله من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أ تبصرون بگو به من خبر دهيد اگر خدا روز را تا قیامت بر شما جاودان کند کدام معبود غیر از خداست که شبی برای شما بیاورد تا در آن آرامش یابید آیا نمیبینید بینید؟ امیر رحمتیه جعللکوم اللیل و النهار لتسکنو لتسکنو فیه ولتبتغوا منه فضلہ ولعلکم تشکرون و از رحمت اوست که برای شما شب و روز قرار داد تا هم در آن آرامش داشته باشید و هم برای بهرهگیری از فضل خدا تلاش کنید و شاید شکر نعمت او را به جا آورید و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون بخاطر خاطر آورید روزی را که آنها را ندا میدهد و میگوید کجایند همتایانی که برای من میپنداشتیید من امت شهیدن فقلنا فَقُلْنَا هَتُو بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا فَعَلِمُوا اَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ در آن روز از هر امتی گواهی برمیگزینیم و به مشرکان می دلیل خود را بیاورید اما آنها میدانند دانند که حق ازان خداست و تمام أنچه را افترا بستند از نظر آنها گم خواهد شد إن قارون كان من قوم موسى فبغا عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي اذ قال له قومه لا تفرح این الله لا يحب الفرحین قارون از قوم موسا بود اما برانان ستم کرد ما آنقدر از گنجها به او داده بودیم که حمل کلیدهای آن برای یک گروه زورمند مشکل بود به خاطر آوریم هنگامی را که قومش به او گفتند این همه شادی مقرورانه مکن که خداوند شادی کنندگان مقرور را دوست نمی دارد و بتغی فی ما آتا کالله الدار الاخرط ولا تنس نصیبک ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الأرض ان الله لا يحب المفسدين و در آن خدا به تو داده سرای آخرت را بطلب طلب و بهرهات را از دنیا فراموش مکن و همان گونه که خدا به تو نیکی کرده نیکی کن و هرگز در زمین در جستجوی فساد مباش که خدا مفسدان را دوست ندارد. قال إنما أتيته على علم عيندي، ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوه ان هو اشد منه قوه واكثر جمعا ولا يسال عن ذنوبهم المجرمون قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آورده آیا او نمیدانست که خداوند اقوامی را پیش از او هلاك کرد که نیرومند تر و ثروتمندتر از او بودند و هنگامی که عذاب الهی فرارسد مجرمان از گناهانشان سؤال نمیشوند. فخرج علی قومهی فی زینتی قال الذین یریدون الحیات الدنیا یا لیت لنا یا لنا قارون و لذو حظ عظیم روزی قارون با تمام زینت خود در برابر قومش ظاهر شد آنها که خواهان زندگی دنیا بودند گفتند ای کاش همانند آن که به قارون داده شده است ما نیز داشتیم به راستی که او بهره عظیمی دارد وقال الذين اوتوا العلم ويلكم فواب الله خير لمن امن وعمل صالحا ولا يلقاها ولا يلقاها إلا الصابرون اما کسانی که علم و دانش به آنها داده شده بود گفتند وای بر شما سباب الهی برای کسانی که ایمان آورده اند و عمل صالح انجام می دهند بهتر است اما جز صابران آن را دریافت نمی کنند فخسفنا بهی و بداره الارض فما كان له من فئه فما كان له من ینصرونه من دون الله و ما كان من المنتصرين. سپس ما او و خانه اش را در زمین فرو بردیم و گروهی نداشت که او را در برابر عذاب الهی یاری کنند و خود نیز نمی توانست خیشتن را یاری دهد و اصبح الذين تمنوا مکانهو بالأمس قولون يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويك أنه لا يفلح الكافرون نهاك آرزو می کردند به جای او باشند هنگامی که این صحنه را دیدند گفتند: وای برما ما، گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش بخواهد گسترش میدهد یا تنگ میگیرد. اگر خدا بر ما مننت ننهاده بود ما را نیز به قعر زمین فرو می برد. ای وای گویی کافران هرگز رستگار نمیشوند. تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُ هَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًا فِي الْأَرُضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آری این سرای آخرت را تنها برای کسانی قرار میدهیم که اراده برتری در زمین و فساد را ندارند و آقبت نیک برای پرهیزگاران است من جاء بالحسنات فله خير منها ومن جاء بالسيئه فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا الا ما كانوا يعملون كفيك كارنیکی انجام دهد برای او پاداشی بهتر از آن است و به کسانی که کارهای بد انجام دهند مجازات بدکاران جز به مقدار اعمالشان نخواهد بود. این الذی فرض علیک القرآن لردد ک ایلامعاد قربی اعلم من جاء بالهدى و من هو فی ضلال مبین آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد تو را به جای گاهت باز میگرداند. بگو پروردگار من از همه بهتر میداند چه کسی برنامه هدایت آورده و چه کسی در گمراهی آشکار است؟ و ما کنت ترجوع ایل قائلیک الكتاب الا رحمه من ربك فلا تکونن ظهیرا للكافرین و تو هرگز امید نداشتی که این کتاب آسمانی به تو القا گردد ولی؟ رحمت پروردگارت چنین ایجاد کرد. اگر که چنین است، هرگز از کافران پشتیبانی می‌کن. ولا يصدنك عن آيات الله بعد اذ انزلت إليك و إلى ربك ولا تكونن من المشركين. و هرگز آنها تو را از آیات خداوند بعد از آن که بر تو نازل گشت باز ندارند و به سوی پروردگارت دعوت کن و هرگز از مشركان مباش ولا تدعو مع الله الها آخر لا اله الا هو كل شيء هالك الا وجهه لهو و معبود دیگری را با خدا مخوان که هیچ معبودی جز او نیست همه چیز جز ذات پاک او فانی می شود حاکمیت تنها ازان اوست و همه به سوی او بازگردانده می شود.